بسم الله الرحمن الرحیم درس دوم ورقات هستیم انواع الحکم، انواع حکم در درس قبلی گفته بود در تعریف فقه که شناخت احکام شرعی الان میخواهد انواع حکم و انواع احکام رو اسم ببره احکام شرعی رو والاحکامو سبعتون احکام حفتان میباشند می میباشند، میفرماید الواجب واجب والمندوب مندوب يعني المستحب والمباح مباح والمحضور يعني الحرام والمكروه والصحيح والباطل كدو تايا آخري از نوع احكامات وزئي هستن هنشتايا آخري از تكلفي حكم در لغات به منع منعه هست منعه کردن و حکم در اصطلاح آنچه که خطاب شرع دلالت بر آن کند آنچه که خطاب شرع دلالت آن کند و متعلق به افعال مکلفین باشد اینجا تعریف انواعش انواعشو آورده ولی حکم آنچه که دلالت کند بر آن خطاب شرع متعلق به افعال مکلفین باشه. حالا این خطاب شرع چه طلب باشه؟ حالا طلب انجام یا طلب ترک چه تخیر باشه من اختیار دادن که همون مباح است؟ و... یا وضعی باشه ماننده صحیح و باطل عظیمت و رخصت. خب پس این شد از تعریف استلاحی حکم آنچه که دلالت داره بر اون خطاب شاره متعلق باشه به افعال مکلفین چه طلب باشه چه تأخیر باشه چه وضع باشه منظور از خطاب شعر همون کتاب و سنت هستند که شارع الله هست خو؟ پس پنجتای اولین یعنی واجب مندوب مباح محضور و مکروه از نوع احکام تکلیفی هستند و صحیح و باطل از نوع احکام وضعی هستند احکام تکلیفی آن هست که خطاب شر دلالت بر آن کند دلالت طلب کند حالا چه طلب فعل باشه چه ترک فعل یا اختیار بده که همون مباه هست اما وضعی نه واضیع اونی هست که خطاب شر بر آن دلالت کند و اون سبب باشه یا شرط باشه یا مانع مثلا زوال خورشید سببی است برای وجوب نماز ظهر لذا زوال از احکامات وضعی است یعنی یه چیزی یا سبب است یا مانع هست، یا شرط هست، یا مثلا حز مانع از نماز خوندن هست، یا قتل مانع از ارس بردن هست، و امثله زیادی که که البته اون تفصیلاتی رو که نویسندگان جدید همچون زیدان، زهیلی، و دیگر نویسندگان خلاف محمد ابو زهره و الی آخر آورده اند دقیق تر و جالب خلاصه دو تا از نوع احکامات وزعی رو نویسنده آورده است و الصحیح و الباطل که اینا رو در درس‌های جلو در ادامه بحث تعریف میکند. فالواجب ما یثابو علا فعله و یعاقبو علا تکه. میگه واجب بعد از اینکه گفت احکام هفته هستن آن تعریف میکنه آن هست که ثواب داده میشه شخص بر انجامش و اقوبت داده میشه بر ترکش اینجوری تعریفش میکنه در تعریف تعریف به حد داریم و تعریف به رسم تعریف که این نویسنده آورده است محلف آورده است تعریف رسم هست به حد نیست یعنی حقیقت و ماهیتشو نگفته بلکه ثمره و حکم و اثرشو گفته واجب اگر به حد تعریف میشد تعریفش چنین میشد که آن است که شریعت انجام آن را طلب کرده است به شکل الزامی این تعریف حدش هست ولی اینجا تعریف به رسمش کرده ای یعنی سمرشو گفته گفته واجب آن است که بر انجامش ثواب داده میشه و بر ترکش عقوبت داده میشه البته اگر میگفت اگر ترکش کند مستحق عقوبت میشود از اینکه عقوبت داده میشود بهتر بود چرا؟ چون مستحق اقوبت میشه ولی اینکه عقوبت داده بشه یا یعنی نه این به خواست و مشیت الله متعال برمیگرده ممکن است شخصی رو اقوبت بدهد و ممکن است عقوبت ندهد که البته اینجاست اصطلاح یوعقبو علی ترکیه رو نویسنده معلف به کار برده هم از جمله جلال الدین محلی مح محلی و دیگر شارهین چون این کتاب بیش از بیست شرح داره اونجایی که من دیدمشون اسمه رو تا جایی که بنده دیدم بیش از شرح داره به خاطر اهمیتی که واقعا این کتاب داشته. پس این تعریفی هست که آورده است واجب میگه آنچه که بر فعلش ثواب داده میشه و بر ترکش اقوبت داده میشه یعنی مستحق اقوبت میشه. یعنی مترتب اق... اقاب برش مترتب میشه بر ترکش حالا اینکه اقاب داده بشه قوت داده بشه نه اون دسته الله متعال است پس این شد از تعریف تعریف به رسم واجب تعریف به حد نه تعریف به حدش شمنی بود که گفتیم که شریعت طلب کرده است انجام آن را طلبی الزامی که زیدان و دیگر نویسندگان این تعریف دومی رو آوردند خب موقعی که ما آنچه آن کهش طلب کرده سریعت انجام آن را طلب الزامی با این قیودی که ذکر میشن طلب کرده است حرام و مکروه از تعریف خارج میشن چون در حرام و مکروه طلب ترک کرده است و به شکل الزامی مستحب از این تعریف خارج میشه چون در مستحب شریعت انجام کار رو طلب کرده است ولی نه به شکل الزامی. البته این به این شکل خلاصه ولی واجب تقسیمات دیگری دارد که اصولیون اونها رو آوردن مثلا شیخ، شیخونا عبدالکریم محمدی در کتاب مبانی فقهش دکتر زهیلی، دکتر زیدان و دیگر نویسندگان ابو زهره، خلاف، شیخ اسعیمین و دیگر علمای معاصر و قدیم واجب سه تقسیم بندی خیلی مهم داره یکی به اعتبار فعلش یا واجب معین هست مانند نماز که نمیشه موقعی نماز واجب هست نمیشه چیز دیگه سر جاش انجام داد یا واجب مخیر مانند کفاره سوگن که شخص اختیار داره خوراک بده برده آزاد کنه یا کسوت بده این بهش میگن واجب مخیر ولی واجب معین که همون ف... نماز بود روزه بود و چیزهای دیگر این به اعتبار فعل بود به اعتبار وقت باز هم واجب بردون هست مضیق و موسع مضیق و اونی هست که درون وقت شما نمیتونید کار دیگه ای انجام بدید یا وقتش تعیین هست به عبارتی و بر اضافه بر انجام اون کار کار دیگه نمیشه انجام داد مانند روزه رمضان که وقتش تعیین هست در رمضان و اضافه بر روزه رمضان شما دیگه نمیتونید روزه نفلی بگیرید واجب موسع وقتش تعین هست ولی اضافه بر انجام اون کار هست مانند نماز که مثلا از زوال شمس تا این یک برابر بشه وقت موسع هست مثل روزه رمضان نیست وقت شتاین هست و اضافه بر فعلش هم نیست تقسیم بندی سوم به اعتبار فائل هست که یا عینی هست یعنی بر تمام افراد فرضه مانند نمازهای پنجگانه یا واجب کفایی هست که مهم اینست که اون کار انجام بگیره مهم این نیست که تک تک افراد اونو انجام بدن مانند نماز جنازه این شده از تعریف واجب المندوب مندوب ما یثابو على فعله ولا یعاقبه على ترکه. بازن کلا این احکامات رو تعریف به رسم کرده نبحد. و تعریف به حد مندوب این است که آنچرا که شریعت انجام آن رو طلب کرده است ولی طلبی غیر الزامی. غیر واجبی مانند مسواک خوشبو زدن و دیگر کارها پس مندوب آنچه چه که تانوییسنده چنین تعریف کرده است ما و علی فعله بر انجام آن ثواب داده میشه ولا و علی ترکه ولی بر ترک آن کار عقوبت داده نمیشه مستحب اون کاریه که میگه اگه انجامش دادی سوابی میرسد ولی اگر ترک شد اقوبتی در کار نیست این تعریف به رسم بود اما تعریف به حدش به حد تا مناقص و, و رسم تا مناقص داریم دیگه در منطقها اینا مطرح میشن خب این شد از تعریف مندوب والمباح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه مباحونی هست که اگر انجامش داد سواب ندارد و اگر ترکش کرد عقوبت ندارد این هم البته مندوب که همون مستحب هست خود مندوب در لغت به معنی دعا هست دعا صدا زدن، خواستن، دعا طلب فعل. بله. و با والمباح ما لا يصابه على فعله ولا يعاقب ولا ترکه این هم تعریفه به رسمش بود در لغت به معنی اعلان شده به معنی چیزی که درش اجازه هست به معنی آشکار کردن هست میگن باح فلانون به سره ای اظهر فلان سره ظاهر کردن و تعریف به حدش هم اونی هست که نه امری متعلق به آن هست و نهی متعلق به آن هست البته به ذات آن نه شریعت به آن انجامش امری کرده و نه از ترک اون نهی کرده ذاتا حالا اگر اون چیز وسیله برای معمور بهی باشد در شریعت یا وسیلهی برای منها انها باشد اون موقع حکم اونو میگیره ولی ذاتاً حکمی بهش تعلق نمیگیره پس مباح یعنی همونی که شریعت اختیار داده است مکلف را نه نهیش کرده است و نه دستور داده است این است تعریفی هست که آورده است مباح بودن در شریعت با سیغای مختلفی ثابت میشه گاهی موقع الله متعال میگه اسم و گناهی بر شما نیست اگر این کار رو بکنید خب این بودن رو میرسوند یا اینکه الله متعال میفرده این چیز بر شما حلال هست یا اینکه نسی برای حرمت وارد نشود اون موقع چیز حلال هست چون اصل بر اشیاه بر حلت هست همانطور که در عبادات بر منعه هست و راهای زیاده دیگری تا اینجای کار که توضیح دادیم واجب رو و مندوب و مباهرو رو لازم هست چند اصطلاحی رو توضیح بدم واجب در نظر جمهور با فرض معنی شکیه است حالا اگر جمهور علما گفتند این چیز واجب هست یا فرض هست حکم شکیه است جز احناف احناف فرق قائلا بین واجب و بین فرض اونی که دلیلش قطعی باشه احناف بشمیگند قطعی و ثبوت دلیلش قطعی باشه احناف بش میگند. فرض و اونی که زنی باشه میگند. واجب منکر فرض تکفیر میشه اما منکر واجب نه این شد از واجب در مندوک اصلاح یکی هست و در هم یکی هست اما المحضور چهارمین نوع حکم ما یو علی ترکه و يعاقب على فعله. ممکن محضور آن است که ثواب داده میشه بر ترک اون و عقوبت داده میشه بر فعلش. اگر کاره رو ترک کرد ثواب داده میشه و اگر انجامش داد عقوبت داده میشه یا دقیقتر مستحق عقوبت میشه و اینی که حالا عقوبت داده میشه یا نه به مشیت و خواست الله مطال برمیگرده. پس محضور از حضر گرفته شده به معنی من در قرآن هم اومده است. و این تعریف رسمش بود، تعریف به حدش محضور آن است که شرع ترک آن را طلب کرده است به شکل قطعی و الزامی. شرع ترک آن را طلب کرده است از این تعریف واجب و مندوب خارج شدند. به شکل الزامی محکروه هم از این تعریف خارج شد. همون حرامو محظور خب اين به برسم و بحدش بود كي ذكر كردين والمكروه ما يثابو على تركه ولا يؤاقبو على فعله مكروهو ناس كي بر ترك اون شخص ثواب داده مشي ولا يؤاقبو على فعله ولی بر انجام اون مکروه، بر انجام اون, اون کار شخص عقوبت داده نمیشه. این تعریف به رسمش بود. اما تعریف به حدش اونی است که شارع ترک اون رو طلب کرده است. ولی نه به شکل الزامش. این تعریف به حد مکروه هست. مکروه در نظ جمهور علما معنیشی که هست ولی در نظ احناف مکروه بردونو میشه مکروه تنزیهی و مکروه تحریمی مکروه تحریمی اونی است که دلیلش قطعی هست و مکروه تنزیه مکروه تحریمی و مکروه تنزیهی و حرام دقت داشته باشیم این تقسیم بندی رو مکروه تنزیهی که اهناف میگن مساوی است با اون مکروهی که جمهور میگن ولی مکروه تحریمی نه مکروه تحریمی همون حرامی هست که با عدله زنی ثابت شده باشه مثل اخبار آحاد مکروه تحریمی همون حرامی هست که با عدله زنی ثابت شده باشه مانند اخبار آحاد این فرقه بود که در این مورد اومده بودن البته در نزد دیگر علما هم شما می ببینید که مکروه به معنای تنزیه به کار رفته یعنی نهی تنزیهی و به معنی حرام هم به کارش بردند علمای قدیم حرام رو از حرام به لفظ اکراه استفاده کردند با لفظ کراهت حرام رو بیان داشته‌اند دا علمای قدیم امام احمد امام شافعی و معنای سومش که هم همین مکروه بود که به معنی ترک اولا بود که اینو گفتیم ادامه بحث وصحیح ما يتعلق به نفوذ و يعتد به صحیح ones که نفوذ به آن تعلق داره اجرا شدن نافذ شدن و يعتد به و حساب میشه شمرده میشه صحیحونی اونی هست که شمرده میشه و نافذ هست حالا نفوذ و اعتداد نفوذ برای معاملات بکار میره و اعتداد هم برای عبادت و هم برای معاملات یعنی اگر نویسنده میگوهت و صحیح ما يتعلق بهی ما یعتد به دیگه صحیح بود نیازی نبود لفظ نفوذ هم بکار برده بشه ولی خب جهد تأکید و تبیین و توضیح پس صحیح است که نافذ هست و حساب میشه شمرده میشه یعنی اگر معاملی هست آثارش برش متعد... مترتب شده و اگر عبادتی هست حساب شده و براعت ذمه شده صحیحونی در معاملات که ك... آثار برش مترتب میشند نافذ شده و در عبادت هم صحیح هست، اعتبار دارد، و براعت زمه شده شخص ازش، از انجامش. و الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، باطلونی هست که نافذ نشده، بهش تعلق نگرفته، و اگر عبادت هست، اگر معامله هست، نفوذی درش انجام نگرفته، نافذ نیست، اجرا نیست، و اگر معامله است یا عبادات لا یوتد به حساب کرده نمیشه پس لفظ یوتد هم برای عبادت کار به کار میره هم برای معامله ولی نفوز برای معاملات لازم هست که اینجا هم یک مسئله ای رو اشاره کنم در رابطه با باطل بین باطل و فاسد در نزد جمهور علما فرقی نیست جز دو مسئله در حج و در نکاح ولی در نظر احناف فرق هست بین باطل و فاسد البته در عبادات نه در معاملات احناف میگویند اگر خلال به ارکان معامله برگشت اون موقع باطله وگه با اصاف خارجیش برگشت فاسده در عبادت نه در عبادت اگر گفتن این چیز باطل است یا فاسد است فرقی نمی کنی. مثلا شما موقع کتاب های فقی رو باسکنید مثلا فقل می که از کتاب های ابتدایی است میگن مفسدات و یا مبتلات و الصلات ولی در بحث معاملات نه در بحث معاملات بین باطل و فاسد فرق هست در نظر جمهور باطل و فاسد یکی هست جز که در بعضی از کتب شما می بینید مثلا در کتب حملیه که در حج و در نکاح بین باطل و فاسد فرق شدن شلون وگرنه به شکل کلی فرقی بین باطل و فاسد در نزد جمهور علما نیست مثلا در حج برای محرم اگر قبل از تحلل اول وقتی انجام بگیره میگند فاسد هست اما اگر شخص مرتد بشه میگند حجش باطل هست در نکاح هم میگن آنچه که علما در فاسد بودن اون اختلاف کردند مانند نکاح بدون ولی اون فاسد هست ولی باطل اون چیزی هست که علما بر باطل بودن آن اجما دارند مانند نکاح موتده نکاح شخصی که در اده است. این از فرقه هایی بود که بین این اصطلاحات بود و, و البته ما خیلی مختصران اینها ذکر کردیم تا همین جای کار کافیست، انشالله درس بعدی و بحث بعدی موفق و پیروز باشید.